خب برگشتیم به استودیوی یلدایی رادیو پس فردا البته به همراه نصفی و حاجاقاین دلمومنین اگه بله سلام. فرمالیکم حیی شنمندگان عزیز یادشون باشه ما در خدمت حاجاقاین دلمومنین و فرزند نصفشون دلمومنین فالا حافظ گرفتیم و حاجی برامون بخشی از شعر رو تفسیر کردن والله انشاءالله حالا بله. دیگه در شبا یلدو و دیوان بله. خودمون دیگه میاد بیرون دیوان دیوانه خودمون دیگه تفاول میشه به به به, به. بله. چی هست حاجاقا اسم دیوانه دیوانه دیوان. خواجه حاجی پروگی خیلی خسته نباشید اتفاقا بله. چقدام برازنده هست برازنده تونه ای فرشی جون من خودم ناشر دیوان بابا ماما میبرم چینچا پشت میکنم چین. ایشانه بردست چا پشت دیگه به جوانو خیلی سخت نمیگیرن دیگه آها آه ایشانه آره. دیگه خب اه اگه اجازه بدین بریم از دیوان خاجه حاجی پیراگی بریم به دیوان خاجه حافظ شیرازی باشه بریم ها با به این بیت هاپس که گفته سر تسلیم من و خشت در میکده ها مدعی گر نکند فهم سخنگو سر و خشت فاشین رو... خیلی سخته راهنمایی بکن لا قباو ددی گناه داره یعنی چی گوسروخش چیه این سروخشی این یه جور مثلا ببخشید ولی خاک بر سرگفتن گفتن محترمانه است اینکه مثلا میگه ای... مدعی گر نکند فهم سخن سروخش یعنی به مدعی که نمیفهمه به مثلا خاک بر سر حالا که از قول روحانیت به شعر بفرمایید خاک بر شرخ خودت خدا اینو همین بذت تحت حشره خاصن این دیگه نداره بسیار خب بعد مصره اول چطور ها جی سر تسلیم من و خشت در میکده ها این اونجا هم تفسیرش... مشخشن شاعر داره بخوردن آها. زهرماری اقرار میکنه که مجازاته شلاغ داره دیگه ولی دادی به نظر من اینجا خیلی تاکید داره روی این که باره. باید به جوان ها خیلی سخت نگیرین دیگه ای داری خیلی ای دیگه کچه دیگه خفا کردی ما را با این آزادی جوان ها دادی ولی چ این همه سال باشم اونها رو زنید شما ولی بابا. نیگه درست نیست حاجا فی... نمیتونیم بزنیم. آه. آه. آه. دادی. دادی. بله. من اینجا رو به نشونی حاجی گونفش جونی چی شدی گلدویه این اینجا شما کودک آزاری میکنی وایس حالا تو هم چلوقش نکر نت... باشه حالا ب... خودت باباتو بهتر میشناسین اسپیجان وایس شب یلداست زشته وایس حالا به باشه, باشه. حاجی بفرمایید شما از این هندونا بزنید یه خورده خلقتون آه. باشه شما مثل که خسته هستی. هستیم بله بده اون رو ما این دهان مبارک ما خوش شد تفشیر تفسیر کردیم دیگه یه نشته ببور بده بخوریم آره بفرمین, بفرمین. دبانه هایتان چرا انقدر مثل خودتان رویه؟ دیگه حاجا قابل ببخشی دیگه این فصلش که نیستاته اینا هم همش انباری هن. از تابستون تو سردخونه میذارن برای شب چله دیگه آقا شما فکر کنم خستم شدید میخواید بریم بیت آخر رو بخونیم تا با توجه نسفی هم دیگه داره بی قراری میکنه اینو کنیم بریم موافقم،, موافقم بله معلومه که بعد بعد خود میکنی واهم نمیشه که اینجوری این آدم دست بزنم که فایده کردی بخو بخو نسفی بخو بخو بخو بیا خب تا شما قاچو میذاری زهن نستی من به تو آخرون میخونم حاجی جان حافظ میگه که حافظا ام. روز اجل یر به کفاری جامی ام. یک سر از کوی خرابات برندت به بهه دادی ببین این دیگه داره میگه به جفراز دیگه بیشتری بدیم دیگه این دیگه میگه که خودم حافظا هم که جوان بوده خیلی کارهایه ناشایستی هستی حافظ حافظا چیه حاجی با. حافظ اسمشه حاجی خودش میگه حافظ نه باشه اون دیگه من به فصراجی زام خودت خودت ناباورا داد ما داره غلط یعنی رو خطاب قرار با. میده این اول شعرشه حاجی جون یعنی تو میگی حافظ دیوانه بوده با خودش حرف میزده اینطوری خجالت نمیکشه کشی روش میگی توهین به حافظ زنم میرد. حکم شرعی بر تو وارد نماید آجی جان نسیم آه. بابا آخه دارین اشتباه میکنین یعنی آخه حافظا نداریم ما اصلا این داره با خودش پس یعنی میگه اونجا که میگه حافظا مرد نکنام نمیرد هرگز اون... این اشتباه کرده اون اصلا سعدیاس اون... اون اصلا ولش کن سعدی بعدم یعنی اون سعدی هم خب داره خودشو رو خطاب می‌کنه دیگه میگه سعدیا اینم میگه حافظ بی بی بیا بگم این... هندونه و اینا رو بردار بیا بریم این فرشید کلاً معتقد سعدی و حافظ و اینا, اینا همه دیونه بودن با خودشون حرف می‌زدن خیلی فکر خب یه خشونت دل بنده این. من جداگاه جویمون اسم هندونا رو می‌بریم شما این ظرفه می و انار و خرمالو و اینا رو بردار بریم که بابا با همین تمومش میکردید اغلن هاجی نصوی آره منم اینا رو برمیدارم برنامه بیگم. رو میگم نه میوه ها اونا رو اوناره که مطمئنم تموم میکنی. تمومشون میکنیم تمومشون همشون میکنیم شما اصلا نگران نباش واسه چی جدا بود در جای کب شادی ها و حافظا توهین میشه نمیمانه من ام باقرد جام اینجا نیستی برا فشارم باش نریز از اون زمان ایزاوی پسیل خودمه من اینا حساب میکنم همش بسه برنامه اونم واسه چی بسه بس حافظ چی بگم والی دلی رفتم آبیه وغن